کرم کریم کرامت هم از اسماع پروردگاره یا کریم هم کرامت از ویژگی ها و صفات ارزنده است که یک بشر میتونه پیدا کنه به لغت مراجعه کنید چی نامیده میشه؟ میگن شرافت نفاست عزت و عظمت پس کرم و کرامت شرافت و عزت و نفیس بودن و عظمتی که برای انسان از نظر بعد انسانی مطرحه سوره اسراء آیه 70 لقد کرمنا بنی آدم اینجا که خدا میفرماید همانا ما کرمنا نابنی آدم کرامت دادیم به نسل آدم و این آدمی زاد رو بزرگوار و کریم داشتیم یعنی چی یعنی خیلی این موجود فضیلت داره میتونه با اون عرض همون گونه که و تبارک الله احسن الخالقین مطرح میشود؟ یعنی عرضش های وجودی که این انسان میتونه داشته باشه در یک سطح بسیار بالایی است لذا اینو به عنوان یک ارزش برای انسان مطرح میکنه کرمنا بنی آدم ما کرامت دادیم خدا داره بنوان عظمت انسان اینو مطرح میکنه دو نکته اجازه بدید درس کنم اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شد سوره عرق اقرب بسم رب الذی خلق خلق الانسان من علق اقرب و رب کل اکرم رب و اکرم رو مطرح میکنه یک رب اسم صفته کریم و اکرم هم اسم صفته به نام اون خدایی که داره شما رو تربیت میکنه اکرم خیلی عظیمه به همون اندازه که اندازه که نداره من زبان گیره خدا که لاحده همون مقدار که شما برای خدا از نظر کرامت ارزش قائلید این خدا بیان میکند حرم نابنی آدم و رب به این بنی آدمه یعنی چی؟ یعنی میخواهد رب اکرم بنده ای را که کرامت توانشو بشداده در فعلیت بکشونه به مقام کرامت اجازه بدید یه توضیح عرض بکنم مربی غیر از مربیانی مثل خود خدا و ائمه اطهار علیهم السلام که ایجاد استعداد میکنن نه اینا رو منها کنید فعلا مربیان معمولی در جامعه استعداد موجود را شناسایی میکنن و نحوه بروز و به فعلیت در آمدن اون استعداد را میدانن و اعمال میکنن غیر از اینه بچه شما را دادید به معلم معلم میگه من در ایشون استعداد ریاضی خوبی میبینم در این آغازاده شما استعداد پزشکی خوبی میبینم این استعداد وجودی است، ولی من به عنوان مثلا معلم ریاضی میتونم این استعداد و بیارم بالا اما استعداد پزشکیش کار من نیست ببر جای دیگه خداوند ربس اقره و رب کل اکرم ربی که میخواد شما رو بیاره بالا تربیتتون کنه استعدادهایی که خودش به شما داده بروز بده اما این رب اکرم است راجب شما هم گفته و لقد کرم بنی آدم یعنی استعدادی که در آدم هست استعداد به مرحله کرامت رسیدنه و خدا میخواهد شما را به گونه ای تربیت کند به این مقام کرامت برسید